که اثر گرفته شده. نه، یا هفت رنگ. هفت رنگم خورشید این هفت رنگ رو داره. اگر شما تجزیه کنی این هفت رنگ رو پشت سرم هم که من خوندم قرار میگیره. بنفش، زرنگ و خب و... وقتی هزار سال پیش ما این آسونی میدونستیم که نور خورشید هفت رنگ میشه با کمان رستم یا اینکه میگن قوس قزح اه... خب ببینید این همه دانش دانشه که همراه با گفتار مردم هم هست چون پرند نیلگون بر روی پوشد مغزار مغزار یک عبرشمی یک پوشش ابریشمی، یک پیرن ابریشمی، نیلگون یک پوشه سبز متنوعی به آبی نیلگونی میلیه ولی که بارون بخوره سبز مطلق نیست، اون ها سبز میلیه پرنیان هفت رنگ هم و سلامت کخصار پرنیان هفرنگ بر سر میروی بر از بارون و جلوه خورشید رنگ ها تجزید میشه هفرنگ میشه و حساب اینجا همه دشت چون پرمیان شد به رنگ هوا گشت بر سان پشت پلنگ پس آگاهی آمده چین و خوتن از افراسی ها و از آن انجامن که فخفور چین با ویم بازگشت، گشت باز به معنی شریک اما در حقیقت در و رافتان وز بود یعنی با هم جنبیدن با هم حرکت کردن وز یعنی جنبش وز یعنی جنبش هست که در بسیاری از های دیگه هنوز باقی مونده مثلا پیش پیشواز یعنی جنبیدن به طرف پیش یا پرواز یعنی یعنی جنبیدن به سوی جلو فکر نکنید که این چون پره و پر از پرمر باشه پره پیشوندش پره است یعنی به طرف جلو پرواز و همین انباز انباز یعنی کسانی که با هم حرکت میکنند که در حقیق شورک کار تجازم هم همینطور با هم, هم, هم هستند که انباز میشن که فخفور چین با وی گشت همه روی کشور فراواز گشت جوزین گناه آگاهی آمد به نزدیک آن زینهاری سپاه یعنی سپاهیان افراسیاب که زینهار اومد به زینهار که خطر اومده بودن همه بازگشتن زیرانیان به بستند خون ریختم میاند یعنی فراموش کردن که زین حالی شدن. از دو مکمه شدن به طرف افراسیاب رفتن. زچین سوی کیخوسته و آورد رو یعنی افراسیاب. پر از درد و آلشکل کینه جوی. چون کیخوسته و آگاه شدون سپاه طلای فرستاد چندی براه. طبیره بر آمد پرد سرای خروشیدن زنگ و هندی درای. بدین صفاهی بیامد تا کنگ که خورشید را آرزو کرد جنگ در همین نمونه اومده منتها معلوم اینی که که خورشید را آرزو خواست جنگ آرزو برخواست یعنی خورشید آرزو کرد که او هم جنگ بکنه یعنی در جنگ شرکت بکنه این جنگ در روز باشه روز بوده رو بله چون افراسیاب اون سفرا ببین بیامد برابر صفی برکشید به فرزانگان گفت که این دشت فرزانه که الان منشو گفتم زمین در داستان پیدایی شطرنج اشانامه همه جا فرزانه به جای فرزین آماده فرزین یعنی وزیر و همین همین فرزین همون فرزانه است یعنی کسی که مرتبا در حال کسب با است وزیر به فرزانگان کسانی که وزیرش بودن گفت که این دست رزم به دلبرد من رو چون خرام است و وزم ندانم که از وقتی که خود روست اوگر بر سرم روزگاری نوست برای اونم که با او شوام هم نبرد اگر کام یابم اگر مرگو برد اگر اینجا یعنی یا, یا, یا کام پیدا میکنم یا میمیرم پیام فرستاد نزدیک شاه که کردی فراوان پس پشت راه یعنی یک راه درازی رو پشت سر بذاشته زکین پدر گردلت خیره شد چون این آب من پیش تو تیره شد همین آب یعنی آب روی داده یکی رزمگاهی گذین گزین دست به دور از بزرگان خسرف پلست اگر من شدم کشته بر دست تو دریا و مهنگ و آورد شست تو شست. این چنگک ماهی گیریه میگه که اگر من به دست تو کشته بشم گویا که از شستی تو انداختی به دریا که ماهی بگیری به جاش نهنگ اومد متوجه میشین که منشو. اگر من شوم کشته بر دست توزه دریا نهنگ آورد شست تو تو با خیشو و پیوند مادر مکوش کوشیدن جنگ کردن به پریز و از کینه چندین مجوش اوگر تو شبی کشته بر دست من به ها روی از دان که از آن انجامن نمانم که یک تن به پیچت درد اگر بیند از باد خاک نبرد به گوینده گفتان بدندیش مرد چونین با مناوی ایخته در نبرد پا، پاسخ که رویه بیت اینجا به نظر میاد که افتاده یعنی نشون نمیده که این پیام به خیخوس رسیده باشه فقط اونجا داریم که زی گوینده بشنید خسرو پیام چنین گفت با پور دستان سام. یعنی با خسرو. بلی باز میبینیم که اینجا گوینده داره. پس بعد اون افسود است. یه بیت افتاده. به گوینده گفتم بدن دیشمرد چونین با من در نبرد. گره که رایش نبرد است و بس جز از من نبرده برا هست کست. و این بوه لشکر برارم به جنگ بمانم به دو روز تاریک و تنگ استاده برگشت و آمد شو باد شنیده سراسر برو کرد یاد. پر از درد چو جان افراس نکرد مکرد بر جنگ جختن شطاب. میبینید اونجا جنگ میخواد اینجا جنگ نیمیخواد اینا گذر روزگاره که در حقیقت آهنگ اندیشه او به دلائل عوض میشه. صفح را به جنگ اندر آورد شاخت به جنبید ناچار دیگر سپخت. یه بخش عظیمی اومده که شبیخون افراسیان بر سفاه ایران. چند رویه؟ بله چند رویه چهار. چهار, چهار سفر چهار و میبینید که سی هزار تا سوار اسب آوردن خونه. اصلا اسب شب نمیتونه الکب بکنه. آوردن اسب در شب ممکن نیست بلی که پای اسب گیر میکنه به سنگای بین را و بخورن زمین. این امروز امروز میگن بهش کله کرده است. بل. کل ممکن است کل بکنه یه خود سه بیوت وای بیشتر بشه و زمین ما سدام میخوام این برگستو و اینها کسانی که افغان ده هستن به شانمی هیچ کدوم از این آیینی جنگ رو نمیدونن که اصلا با آس نمیشه آس پشه میکشه آس تون میتونیم که دوست بگیریم که برای شادی خون و پیاده باشه و خب این بخش عظیم انجام داده که کنده داره تا مسیح افغان ها مسیح زمین لرزه میشه همین خاک برخواست از رعب بیزد بزد بر سر چشم توران سپا من یک بار گرتم که باد که همراه با خاک است، چون از سوم اسوان خاک بلند میشه بعد اینا رو میزنه به چشم, به چشم دهان بینی سپاه روبرو و او همین یکی از دلایل بزرگ شکست یکی از تو سپا میشه اینی که ما هنوز داریم میگن, که مثلاً که میگن وای بر تو وای یعنی باد وای بر تو یعنی در اون نورد باد به صورت بخوره که شکست رو میشه یا اینکه به یک ای کس میگن که این خودش شخصا کاری نکرده باد به پشتش خورده یعنی باد از پشت اومده بشه یاری کرده و اون داستان شبیخون هم همه نادرسته برای که شما بینید که این عبیات پیوسته خوش سره همه حالا من دومتر و عبیت پیوستر میخونم سپه را به جنگن در شاه به جنبید ناچار دیگر سپاه. ز... همین خاک برخواست از رزگاه بذارد بر سر و ششمه توران سپه میبینید ایلافصال دنبال اونه و باز بعد از این زه تیر آسمان شد پر اوقاب. از تیر آسمان شو پر و غاب نمیشه از گربه میبینید که الانم از, از گرد صحبت کرد که باد ز به ز گرد آسمان شد چه شو پر ها بین سیاه رنگ شد نگه کرد خیلی سرف ز ذخی شایسته مردی هزار بهبرد آن که بود از در کارزار با هزار مرد با همه کوریختن یه فرصت گفت پ رو ب و سوالاتی زیادی که جانم فدای ایران من جاوید مرزهای فرهنگی ایران پالش یعنی چه؟ امیر پالش گت ساران. پالودن پالایش کردن یعنی صاف کردن درست کردن یعنی یک چیزی رو گرد خاکی رو یا یک تیرگی رو از یه ای بیرون کردن این پالودن میشه پالاییدن میشه و پالش این معنی داره امیدوارم شما شاد باشید و کشور بیمار ما همون همون است که بر سر این دشت و کوه ها از دشت های گرفته تا دود سند و از اون تا اروان رود و تا تا قرب انرار اروان رود و از اون بر تا و تا تا تارستان و تا و کردان و اینا همه در این مرد بیمرد فرهنگی هردن شاد باشیم میبینید اصلا جمهدی الان که پیامک کار رو نگاه میکردم از تمام ایان پیامک دیدم. و چقدر کیس میکنم چقدر لذت مرمی که میبینم این شنونده های ما مربوط به منطقه نیستن الان حالا پیامک رو میخونم از دهلوران درود به شما شهر قدیمی کلاته در دهلوران آیا رفتی داره به اون کلاتهی که تو شاهنامه هست ممنونم بهار از دهلوران همه میپرسن در موردش. به بهار دهلوران که کلافر من دیشه جواب میکنم این در پهلوی بود کریتاک. کریتاک یعنی ساخته شده. شهرایی میساختن. این گونه شهرها خلاف اون شهرایی هست که به صورت طبیعی کم کم در کنار رودخونه یا کنار چشمی بودن و کم کم رشد کردن شهر شدن اگر یه سردار یه پادشاهی، یه جایی رو به دلایلی میساخته میگفتن کریتاک. این کلیتاک تبدیل شد به کلاته در زبان خراسان بعد این کلاته در تبرستان و گیلان به صورت کلا در اومد افتاد و این کلا در آذربایجان و کردستان به صورت قلا در اومد و بعد عرب ها معرب کردنش کردنش قلعه همه اینها از زشه کلیتاک گرفته میشه کلاته شما همینه دیگه بخش دیگه اینه پرسش نداشت بار؟ نه نه همین بوده سلام در شهرستان بینید من همه دارم حالا این شهرهای ایران و تمام ایران هستش که سؤال دارن از برنامیون یه پرامک اومده که خیلی خوب بود خیلی دوست داشتم حالا این علام میگم می... گفته بودن که ای کاش همه روزهای هفته اسمش یه شنبه بود و شبش یه شنبه بود <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> منم من با اون امودیم که ایرانیان هموار شاهنامو بخونم با شاهنامه جان و روان و خودشون پرورش بدن با شاهنامه شیوی انسان بودن مردمی داشتن شیوی فرهیختگی سریع سالاری رو بیاموزند کشور ایران هزاران سال تخت و پارتخت و فرهنگی, فرهنگی جهان بوده هنوز هم این امکان رو داریم به امید گزدان به امید روزی که همه شاهنام رو امید خدا من مطلبی هم باید در آغاز برمان خدمتون نرزم کردم من سرمو خودم ببخشید اگر اینی و اینو حالتی چیزارم بعد میخوام عطس کنم جلوی خودم و میگیرم خباسته ببخشید اه سلام اه در شهرستان دشتستان شهری کوچک از دوره ساسانیان به جا که در حال حاضر به آن تنگرم میگوین ظاهرا قبلا رم زیوان است زیوان نام میده میشده اگر ممکنه در خصوص معنی گذشته بحث بفرمایید خب رم،, رم که یه رمه اگر رم باشه اگر رم نباشه چون رم روم، روم به معنی خانه در زبان فارسی بوده در تارم مثلا ما داریم در رمدان داریم این به زبان انگلیسی هم رفته رم شده اما اگر رم باشه رم رم رم زیبان یعنی, زیبان یعنی زندگان یعنی جایی که رمه ها در اون زنده هستن رمه نه تنها ما اون روز رمه رو خاطر گستاندان میگیم. ولی رمه در زبان فارسی به صورت گروه مردمان هم بوده. میبینیم که در یه جا از شانه اومده که سر یک رمه مردم بیگناه نشاید که گوریدن اومده. یک رمه مردم. و تا اونجا که من میدونم در کوکیلیو با رحمت در لورستان انا هنوز که هنوز میگن رم. رمه. مثلا میگن یک رمه دختر اومدن. بنابراین به این ترتیب زیبان، این جایگاه زندگی زی پرسیدن محلّا با سلام خدمت استاد معنی اسم محلا چیست؟ این نام, نام صورت فارسی نداره و چرا حرفی از یونانیان در شاهنامه نیست؟ چرا؟ کی گفته؟ اجبه بدیم میرسیم تباه کاری هاشونه میرسیم و پیامه دیگه آن این هم خیلی قشنگه با درود فراوان پدر بزرگ من در یکی از رستاهای یزد بسیاری از واجه هایی که استاد میفرمایند و استفاده می کنند مثلا هنوز به توشتچه نالی می گویند خب در آذربایجان نالچه شاعتش... بود در <تصفيق> خراسان نالیچه در یزد نالی ما خیلی که به اصلش بود نحالی بلی. بلی. و پیامک که دیگه می کنم تلفن های شما آماده میشه من حسابی ببخشید حالت سرمو خورده دارم عضو میخوام از آرزوی دیرینم خواندن شاهنامه با راهنمایی نمایی استادی بود این آرزو را تنجره های رو به مهداب براورده درود به شما سپیده شاد باشید سپیده خوش ها به تو که به آرزو رسیدی امیدواریم که دیگر ایرانیانم با این آرزو همراه باشند. سیاو بود باو کوروی هزار نفره و ریخت بی چونین تا آب آب زرّه آب زرّه یعنی اقیانوس اقیانوس کبیر که پدسی با همه همه اقیانوس ها واسطه بوو هستن این بیونستر ا آب استو دو بوو رو کشه یعنی بسیار مرز و بعد در در در تفسیر پهلوی میگه که برای این بوو رو کش یعنی بسیار مرز عفتن که هزار دریا به دان پی بسته است خب معلومه که این حرکت بحر محیط یا با کبیره که به بقیه اقیانوس ها وابسته است خوب. افسوسه از اون سو حرکت کرد رفت به کوره کره رفت طرف طرفه دریاهای اقیانوس کبیر چون بیامد چونین تا با آب زرع میان سود از رنج و بنده گیری یعنی کمرها اینا سایش پیدا کرده از بنده و در حقیقت خفتان و زیده خویدم. چون از اینکه اونجه هر یا رسید مران و کرانه ندید این, این در حقیقت توصیف اولانش کبیره بفرمود تا محتران هر کسی با در آرند کشتی بسی چون این گفت که در باشیم شاد سه کار گذشته نگیریم یاد تو روشن شود تیرون اخترم به کشتی برای آب زره بگذارم ز دشمن بخواهم همان کین خیش در کنم راه و آوین خیش خب در این بخش تو همیجا داستان اگر بعد اینجا میتونیم باز تلفن‌های تلفون های شنواندگان عزیز آماده هست پیامت کام هست ما بیشتر پخش میکنیم تلفون ها رو در پیامت چون هم استاد مایل هستند هم احساس میکنم از این طرف سوالات زیادی پاسخ گفته میشه و گفته های زیادی گفته میشه از طریق استاد آماده این اولین تلفن رو بشنبیم استاد پاسخ بفرمید با نام یزدان پاک با درود بر هدایتی عزیز و با درود بر استاد فرزانه فریدون جنیدی کنم خدمت من میخواستم استاد زحمت بکشن در مورد ناموغزاری فرزندان فریدون تو و سلام و ایراد علت ناموغزاریشون چه گونه بوده چه محاسبه‌ای بوده می‌خواستم استاد زحمتش رو بکشن شاد باشید دیگران رو هم شاد کنید با هستم از شما شد درود بر شما ایرج و سلم و تور ایرجن یعنی ایران یعنی کسانی که در ایران باقی موندن سلم کسانی که به طرف سرمت رفتن در اوستانا نامیناس سئیریما بعد در فارسی شد سرم در فارسی شد لری تبدیل بلش شد شد سلم ما مثلا یک معنی سلم آقای دکتر برخشانی در برده از متون گذشته به معنی مغربه یعنی رفتن به طرف معقب مثلا اورشلیم که میبینیم این شلیم همون شلم یعنی شهر مغربی تورانم هم که در ابستوموت توئیریه یعنی پسرمو یعنی به خوبی ما اینا رو مشناختیم که پسرمو ما هستم چون که فرزندان تور در حقیقت در یک های عظیمی که در مرکز ایران رخ داد کلاً ها ناچار شدن که برای پیدا کردن آبشخور خورهای جدید هم بیرون نخستین گروه همون ایرمن یا سرم یا سلم بود یا سرمت و نخ... گروه دروم تویر یا توران بودن اما ایرانیان موندن من به خاطر دارم که در یک که خواهش کردم که کسانی که میشتردم رو... یعنی... یعنی... یعنی... کاغذ رو بردارن این رو تصویر کنن تا بیتی رو که هیچ کس در شانم تا به حال نتونسته بود که معنیش تو پیدا بکنه این پیت رو حالا معنیش رو ما پیدا کنیم حالا دوباره میگم چون آقای باشوکی وقتی که به عنوان یک شنونده همواره به یاد نداره شاید خیلی یا کسانی که تازه پیوستن اگر کاغذ دستتون هست یک مربع بکشید گوشه یه چپ بالا رو بنویسید باد گوشه یه راست بالا رو بسین خاک. گوشه یه راست پایین رو بنویسید. آب گوشه چپ پایین رو بنویسین آتش این چهار عنصره. تا در جغرافیای جهان همیشه بین خاک و باد چیز بوده، همیشه جای سرد بوده. یعنی جایی که بین خاک و باد بوده، همیشه سرد بوده. بین خاک و آب سرد و مرطوب بوده. بین آتش بین... و آب ببخشید بین خاک و آب, آب. همیشه. همیشه سرد مرتب. و مرطوب سرد و مرطوب بین آب و آتش گرم و مرطوب بین آتش و باد گرم بوده میشه گرم و خشک هم سرد و خشک بنویسین ولی خشکشو نگفتم سرد و خشک بالا طرف چپ گرم و خشک پایین, پایین مرتب. گرم مرتوب این طرف سرد مرتوب اون وقت ما میبینیم که ایرج در شانومه این طور اومده که زخاک و ز آتش میانه گذید یعنی یه به شما باید رسم کنید بین خاک و آتش اینجا جاییه که همواره گرمه گرما داره و در زمستان همواره سرده و آب کمتر داره این, این صفت درشت ایرانه بینید کویرها اینو هم وارد کردن در مرکزن بله جوهای دیگه هم سرده ولی آبم کم تره سخاو کو آتش میانه گزید چنان که از رأی سازید یعنی حوشیاران یعنی ایرج یعنی ایرانیان خانی نیاکان خودشون رو نگردن موندن با وجودی که بین خاک آتش بودن یعنی سردو گرم بودن متنابراً جایی که کم آبه اما اینجا رو ترجیح دادن و همه سرزمین های زیبای جهان ما از این خاک هستیم در این خاک زندگی میکنیم این خاک رو ستایش میکنیم با سلام خدمت آقای دکتر لطف کنید در موز نامی که از روستاهای گلپایدان به نام چه جان و در محل ما گودی را مم... کندال در محل نگهداری گودی رو گودی کندال در محل نگهداری گوسفندا رو کنده میگویند متشکرم حمید از گلفوگونی خب شاد باشین حمید گلفوگونی از اینکه کندال و کندارم گفتین جان در طرسنتو به معنی گان یا معنی محله و فلاورجان مثلا عموماً شعری داریم به نام جان یه شعر داریم به نام لاهی جان این ها زیاده کم نیم بس شهر داریم رفسنجان، جان جان این جانا همه به معنی محله اگر ساده بینگاریم این ممکنه مر، مر، محله پربرش و کنجد بوده باشه و اگر نه این کنجد باز دو مرحله تقسیم بشه به دو بر تا ببینیم معنی چی بوده ولی مسلم اینه که جانش، جان پسفند پسفند مکان تلفون بعدی رو میشته. از زمانی که صحبت می کنن بفرمایید هنوز کلمه به جای کلمه امرداد مرداد میگن این خواهش میکنم این کلمه مرداد یعنی مرگ و نیتی ولی اماداد مرگی و جاودانی این خواهش ما با استاد دی به سمت که تذکرونم در درباره لغات صحبت میکنم این مطقره بازگو کنم بکنم سپاس گذارم شهریاری هستم شهر بر شما شهریاری مدتی که آوایگرتون رو نشیده بودم از این کوششی که می‌کنید درباره درست نوشتم و درست کنیم. گفتم من خزارم البته همینه این واژه بوده همه مر اطت در ابستا بعد در پارلمه شد وردت بعد در فاسی شد همورداد یعنی بی یعنی یک استف های خداونده یعنی چشم صفت خداوند بارها گفتم باز همینطور میگم که به من دیشه اشها و ایشتا یعنی برترین زیبایی پاکی راستی دومی صفت خداوند بعد شهریور یعنی شهریاری آرمانی که ویژه خداوند سبومی صفت بعد سفند, سفند آرمانیتی یعنی کسرشو تقدس و فروتنی و عشق که از صفات خداونده بعد هعور و تاتر بوده که در فعلبه شد خوردت در فارسه شد خرداد یعنی بالش و رویش و بلند شدن و ادامه زندگی در جان و جهان که این با امورت یعنی بی امریت وصی پالوی و امورت پهلوی و امرداد فارسی همراهه بدانید هوشیار باشید آگاه باشید اگر کسی امرداد رو که صفت خداوند بگه مرداد بدونید که در حقیقت یک یک زشتی رو به کار برده متاسفم پرامه اومده که شما پاسخ گفتید در برنامه اونتا باز هم من از از خطورتون خواهش میکنم بفرموید. فردوسی این همه دانسته های و علمی را از کجا آموخته بوده؟ فردوسی از مادر میهن، فردوسی از ایران. بخواهیم، بکاوییم، ما هم فرزندان فردوسی هستیم، بکنیم که پیرو باشیم. میخاستم از محظر استاد یه سوال بپرسم کتابی به نام منشور کورش از هقا به عنوان نژادی از هند و اروپایی که سلسله پادشاهی حخامنشی بنیادنهاد یاد شده میخواستم بینم تا چه حت سه سحد داره اینجا توضیح داده که بعد از سرکوبی ایران به دست آشوربانیپال هخامنش از نژاد هند و اروپا سلسله پادشاهی پارسها را بنیان گذارد با تشکر اخلاقی هستم از اندیشه شهریات من نمیشه که سفرش شب زار شما می‌شید. تو یکی از واجه های و اصطلاحاتی رو که اروپایی در فرهند به وجود آوردن و سابقه باستانی نداره به هیچ وجه کتاب ها و فرهنگ باستانی نیست همین نام هند اروپاییه اونا با این کار خواستن کاری بکن که نام ایران رو از میان بردارن در حالی که خرد نشون میده که اگر یه حلقه ای از آریایان هندی باشند و یه حلقه از اینا اروپایی باشند حلقه میانین جایی بود. اما اینها با این یعنی در حقیقت سبو یوتیوب ولن این نام ساختگی که هیچ پیشینه در جهان نداره خواستم ایران رو محبو کنم در تاریخ و کسانی که اینطور داوری میکنن همه پیرو و همون اندیش هستن حسینن استاد جنیدی بعد سلام و شب بخیر آقای دکتر لطف کنید بفرمایید دیانا به چه معنی است فئنا فئنا یعنی یک نیرویی که نیروی باطنی که در حقیقت بیننده جهان هست و بیننده کارها این دعینات کم کم تبدیل شده به دیانا در عربی است بله مطلبی بود که الان تمامکی اومد منو یادم افت من اشاره نمی کنم خیلی از شما شنوندگان عزیز الان شاهنامه رو باز کردید و بگید همراه با ما شاهنامه رو میخونید البته شاهنامه رو که بیلایش آقای دکتر جنهیدی از استاد جنهیدی هستش در اختیار شما خیلی از شما نیست خیلی از شما هم دارید در اون عبیات افسوده هست در شاهنامه استاد جنهیدی عبیات افسوده مشخص شده اما شاهنامه های دیگری اگر دارید هم اون چاپ موسکو یا اون چیزی که الان دستتون هست دقت بفرمایید ما اشاره به رویه یا همون صفحه و دفتر منظور شاهنامه خستاد جونهیدی هست من شنب... با سلام من تازه شنونده برنامه شاهنامه شدم رسفا من را راه کنید تا این قسمت که میخوایید را پیدا کنم ما در آغاز ارس کردیم ادامه داستان کیخسرو و دون با افراسی ها بوده در برنامه هفته برنامه شنونده هستید من در آغاز برنامه باز اشاره به این مطلب خواهم کرد وقتی شاهنامه رو باز کردید همراه ما هستید ما سپاس گذاریم از شما با سلام به برنامه خوب پنجرهای رو به محتاب موجدیان، و در کارها و خصوصا استاد محترم جناب آقای دکتر فریدون جنیدی. یه سوالی داشتم قبلا راجع به این بیت که به روز نوردان یل به شمشیر و خنجر به گرس و کمان پولید و دریت و شکسته به فسیلان و سر و سینه و, فا و دست اصصاار بوده بودن که این بیت جز ابسوده‌هاش به این سبب که در آن واحد خب نمیتونسته با همگی این ابزارها کار بکنه. اما من میخواستم ببینم که شاید منظور, فر... منظور اینجوری بوده که در روز تا پایان روز با این ابزارها به جنگ پرداخته آیا با این تفسیر میتونیم به ایتو بپذیریم یا نه همینطور خواهش میکنم از استاد که اون هفت دانه ای رو که برای هفت زین استفاده میشد رو مجددا به آرومی بفرمایند و ما یادداشت کنیم با تشکر از استاد عجمند همینجور عوامل برنامه سلیمانی هستم از نیشا بود شبتون بخیر درود بر شما آقای سلیمانی این دو بیت که خیلی به زیباترین لف و نشر مراتب جهان به شمارش اوبردن هر کس که سروده زیبا سروده اما مطابق با این نبرد باستان نیست در اون نبردم هم رستم حرکت کرد سردار یعنی سپهسالار ایران به سوی سپهسالار توران و او رو زمین زد و با شکست اون تورانیان گریختن در اونجا هیچ جنگ دیگه اتفاق نمی‌افتاد که ما بگیم در طی روز این کار رو کرده. این در هم آشوفته است و ما بارها در آین نبرد رو گفتم که نبرد اول با نیزه شروع میشه بعد از نیزه نوبت شمشیر میشه بعد از شمشیر نوبت گرد میشه اینها که ناکار شد و هم نزدیک شدن اون وقت همگام خنجره و خنجرها وقتی که اگر کارگر شد یا یه اده شدن نوبت میشه دیگه خیلی تنگ و تنگ هستن به کشتی گرفتن نهادن سر یعنی به هم نزدیک میشن گرفتند هر دو زوال کمر این آین جنگ باستان بوده و غیر از این نبوده این حبیات با اینکه زیبا سروده شده اما اینطور نیست اون نبرد فقط نبرده رستن بود با افراسیاب در همون افسوده اونجا بازم میبینیم که مشخصه که مثلا فرض کنیم که 1160 قرد دلیر به یک حمله شد کشتشون نرشیر این نرشیر کیه یعنی کسانی که اگر اون باید بگیم کشته شدند نباید بگیم کشته شد ببینید اینا همه ارسود است خب دقت بیشتر بکنیم با این که جیبا سرده شده سلام من چند بار پیام دادم که در باره تاریخ کیان که جز شهرستان نهاون می باشد توضیح دهید اما هیچ توجهی نمی کنید با تشکر خانم کیانی خانم کیانی درود بر شما بار اول می شنم. کیان سه سله های پادشاهی ایران و باستان که با کیقوبات آغاز شد کیقوبات در عوسته از کبی کباته یا کبی کباته نام یعنی شاه شاهان یعنی ایران به درجه رسید که هر بخشی از اون برای خودش فرمان روایی داشت از جمع این فرمان روایان یک شخص را انتخاب میکردن که در شاه شاه ایران باشه و این دوره دوره بسیار خوب بوده و ادامه پیدا کرد با وحمن و با همای و با داراب که کروش باشه تا متصفانه داریوش اون رو از بین برد و شاهی مطلقه یک نفره به جا گذاشت دوباره عشقانیان شریف اون شیور رو گرفتن با به حسیل ساسانیان شکست داده شد و همون موجب به شکست رو صابوت ایران گرده اگر مردم ایران در همه جای ایران بدونن که در سرنوشت ایران صحیح مستن بیشتر جان فشانه می کنن این کارها به حسیل داریوش از داره به نام نامی آفریننده مهربانی و عشق می‌خوام خدمت شما بزرگواران دست در کاریم برنامه خوب و استاد ریدی که ارادت خالصانه بهشون دارم و داریم همه ما. بزرگوار با توجه به اینکه ما به پایان سال و سر مراسمی فراست در این ایام مثل عید نوروز نزدیک هستیم میخواستم اولا سؤال کنم جایگاه این آ... این و رس در تاریخ کهن ما از زبان فردوسی و شاهنامه بزرگ اه... کجاست و اینکه نحوه درست شادی کردن در ایران باستان چگونه بوده و الان چگونه ما باید انجام بدیم که مثل اسلاف بزرگ خودمون رفتار کنیم و تخطی نکنیم از هویت ایرانی خودمون متشکر میشم اگر در این مورد توضیح بفرمایید سنگاری هستم از نوشهر مازندران مزند تو شدن حق نگهدار شما بود شما و قبرستان در آغاز سال در شناختن آغاز سال در زمان جمشید بوده که من همطور که قول دادم به فارسی زبان دادم در این یک شنبه آینده اون یک شنبه که درست شبه نوروز است در این بارم صحبت خواهم کرد و آقا اینیشم تا اونجا که ممکنه بیان خواهم کرد من فراموش کردم در پاسخ یکی از این شنوندگان که این دانه ها رو پرسیده بود از من که این هفت هفتانه کدام هست گندوم جوب بین بیشید اگر می بیشید گندوم جو لوبیا، عدس ماش باغلا ارزن این هفت گیاه رو در هفت ظرف می تا اینکه که سر و در روز تیشتر این رو هدیه بکنن به تیشتر ستاره بارون. دکتر من یه ơi داشتم بنده ناصر هزارخانی هستم اهل سهمه کرمانشاه میخواستم ببینم اسم این شهر ما گذاشتن صحنه این سحنه چه معنی داره چطور شده که این اسم این شهر ما گذاشتن سنه خیلی ممنونم متشکرم از برنامه خوبتون خدا نگهدار درود بر شما پلوان شما از صداتون معلومه که سالی براتون گذشته شما نگن کرمان بگید بگیید کرماشان درست واژه کرماشانه و پیران کرماشان همه میگن منم هم از اونا یاد گرفتم که کرماشان بگم درود به کرماشان اما میدونید که بسیار از این نام ها به صورت با واژه های عربی و با واقع های عربی نوشته شد مثلا تهران تا مدتی پیش باه دستهدار میذاشتن که معنی نداره. و خب اینها ها کنتهی توس رو مثلا با تایی دست دارم لیشن به اعتمال قوی قوی صحنه همون سعینه باید باشه که از ا... اکنون در کردستان سایندش ازش باقی مونده و این یعنی جایی که باره برخط فلزی داشته باشه سعینه رو دست کم نگیرید شاد باشید ام تلفون ها ماند و پیامک ها من با سرعت بعد از پیامک ها رو میخونم با درو در استاد جنیدی بزرگوار و تمامی ایرانیان این سوالی مرا برای دهمین ده بار است که میپرسم خواهش میکنم که از استاد بپرسید نسبه استاد جنیدی از کدام قوم ایران است باور بفرمایید که پشت فرمان کامیون این پیامک رو نوشتم سپاسگزارم منتظر جواب شما هستم شب بر شما خوش شاد باشید اشکان هستم از ایران آقا اشکان پشت کامیون این کار نکن کنار بیستید این کار رو انجام بدید یک هموطن دیگه ما قبلا که ترخیط سالخوردن بود بود من یک ساعت و میزنم کنار این دروش در بر چون من با حیجانی وقت <تص> رو سال بکنم نکنه شما گاز بدید نصب من فریدون فور فریدون من خاک ایران اون باشه وقتی برای دفی شاهنامه را برای دبستانی هایم میخوانم آب می شوند. آب میشون و گوش و آتش و گوش و آتش اون دبستانی ها شما چشم اینا و گوش شنووا ایران آقاینده خواهند بود با شاهنامه حادزی بود درود بر شما خیلی خوشحالم دوباره صدای شما رو میشنوم. حامد از زیبا شهر قرسی شباد باشین پیروز باشین ما خوشحالیم که شما برنامه این بارو میشنوید خوشحال هستیم که در خدمتون هستیم سپاسگزارم گذارم قساج از شما پیروز باشید شما همین من کار نکردم من انجام خیشگاری خورم اصف وظیفه این یعنی چیزی که از بیرون به انسان محول بشه خیشخوری یعنی چیزی که خودشون خود انسان بخواد این, این خیشخوری من که از 35 سال پیش در پیش گرفتم و در راه فرهنگ ایران کار می‌کنم این بزرگترین افتخار و سربلندی خدا نگہداشتتون باشه شاد باشید تهیه کننده برنامه آقای محمدجواد هاشمی الهیری صدابردون آقایان علی طاهری و آقای نورالله هیداری حماینگی خانم خنوم مریم مردانی و آقای مهدی دهیمی حماینگی برنامه آقای صحرا به ستایش منشدید اثباتات آقای حسینی چگینی زاده من حمید رسا حدایتی بار سکاس کزارم از شما مردمانی میم چپ بر شما خوش